برمی دوستان، فکر می یه اتفاق خیلی جالبی افتاد، اینکه صحبت بنده بعد از صحبت جنابی کرمی افتاد و ایشون بکنم شروع بحث رو از بیگ بنگ آغاز کردن، یه جورایی انگار هندوبر شد به بحث بنده. موضوعی که قرار هست من در خدمتون باشم، بحث اون چه که داره بر سر میراس کشور ما میاد به عنوان فسیل ها دیدیم که تو مجموعه تصاویری که جامعه کریمی نشون دادن چه تاریخچه بزرگی بر روی زمین گذشته و ما به امروز رسیدیم فسیل ها چی هستن فسیل ها در واقع یک سری آثار باقی مونده از موجودات مختلف هستن که میتونن موجودات جانوری باشن اهم از بی موهره یا گیاهان باشن <تصفيق> چیزی که به ما نشون میدن فسیل‌ها اون چیزی که بر زمین گذشته رو دارن به ما معرفی میکنن تاریخچه‌ای که بر زمین گذشته و چه وقایعی رو زمین تحمل کرده. پس میشه گفت عملاً ما داریم صفحات یک کتاب رو با دیدن فسیل‌ها ورق میزنیم. خب اون چه که تو این نمودار داریم با هم می بینیم، نشون دهنده این است که از شاید حدود مثلا به عنوان نمونه 400 500 میلیون سال قبل تا به امروز یک سیر تحولی رو کل موجودات گذروندند و با هماهنگ کردن خودشون با وقایعی که بر اینها گذشته خودشونو تونستان هماهنگ بکنن و تا به امروز به ما برسند خب و خیلی هاشون هم نتونستن خیلی یکی از نمونهایی که اغلب ما هم میشناسیم به عنوان نمونه شاخص دایناسور ها هستند خب اگر امیدوار که کمی بینیم در یک بازه زمانی اینها کلن منقارز شدن یا خیلی از موجودات دیگه که هستن میلیونها ساله که اینها وجود خارجی ندارند نمونه از اینها مثل بعضی از بن پاها هستن که واقعاً موجودات با ارزشی هستند ولی اینها عملاً بعد از دوران اول زمانی اصلاً دیده نشده. خب تئی این روند و تئی این فرایند اتفاقی که افتاده این هستش که ما متوجه میشیم برای اینکه موجودات بدنشون و اجزای بدنی اونها به فسیل تبدیل بشه خیلی شانس در بالایی باید داشته باشن چون شاید با درصد بسیار بسیار پایین شانس وجود داره که یک موجودی تبدیل به در فسیل بشه و ما امروز اونها رو بتونیم ببینیم خب ببینیم ما برخوردمون با فوسیل ها به چه صورت هستش جالب اینجاست که ما در آیننامه و قوانینی که در کشورمون داریم و یکی از مسائلی و متاسفانه هایی که و گریبانگیر فوسیل های کشور ما شده اینه که در دانشگاه های ما هیچ اطلاع رسانی در رابطه با اینکه جایگاه حقوقی فوسیل ها چی هست ارائه نمیشه جالبه که ما قانونی رو مربوط به محیط زیست داریم مربوط به سال پنج... در, در سال که سه ماده از این قانون به صورت خاص به اهمیات فسیل‌ها پرداخته مواد دیگه هستش که حالا کمتر و با شاخص بودن کمتر خب من اینها رو خلاصه نویسی کردم برای اینکه به اصل موضوع بپردازیم به عنوان مثال ماده 38 در بند علفش داریم یکی هر شخصی که فسیلی رو پیدا بکنه یا محل اون رو به سازمان معرفی بکنه در واقع مستحق گرفتن جایزه هستش در بند به سودر و فسیل از ایران تابع قوانینی ای هستش که سازمان های زیراپ مثل سازمان زمینشناسی سازمان حفاظت از محیط زیست اینها را تأمین میکنه و تعیین میکنه و در بند جیم سازمان مجازه که به کشف برای کشف و گردآوری فسیل اقدام به حفاری و یا تعیین محدوده میکنه مثل اون چیزی که در امروزی بزرگ مدریم می‌بینیم. خب. در ماده سیونو یه نکته دیگه هم داره به میگه، میگه کلیه سازمان ها و ارگان هایی که طی عملیات هایی که دارن انجام میدن، مثل راهسازی سازی، تونل سازی، و این نوع فرایند ها اگر به آثار فسیلی برخورد بکنن اینها رو باید به مجموعه سازمان معرفی بکنن و در ماده چهل هم یکی از مطالب جالبی که گفته میشه، این هستش که سازمان میتونه با تصویب یک شورای عالی اقدام به مبادله فسیل با سایر جاهای دنیا بکنه با موزه ها و مراکز علمی خب یه اتفاق مهم رو ما داریم از این قضیه می‌بینیم و این که ما یه سری در واقع بندهای قانونی داریم و داره به اهمیت فسیل ها به عنوان یک ثروت ملی بهشون میپردازه شاید یکی از جاهای یکی از اتفاقات جالب این باشه که این بحث داره تو یک مکانی انجام میشه که در واقع محل نگهداری آثار تاریخی و در واقع باستانی کشورمون هستش. ما چقدر داریم به اونها اهمیت میدیم؟ وقتی میفهمید که یکی از این آثار به هر دلیلی داره تخریب میشه، خب به طرق مختلف سر می جلوی این تخریب رو بگیریم. اما واقعیتش ما چه،, چه کاری انجام میدیم در برابر آثاری که این آثار خیلی هاشون 300 میلیون سال 500 میلیون سال قدمت داره و دیگه تکرار نشده و اگه یک نمونه فسیلی رو که داریم می‌بینین و اگه به اون آسیب بزنیم این دیگه برگشت‌پذیری نیست. خیلی مواقع در قالب بسیاری از برنامه‌های گشت، عم از برنامه‌هایی که دانشجویان زمینشانسی در دانشگاه‌ها دارن انجام میدن، سفرهای شخصی خود این دانشجو و یا حتی طبیعت و کوهنوردا و جمعی که شاید خیلی از مهم هم توشون باشیم، خیلی از نمونه‌ها رو برداشتیم. مثل این نمونه که الان می یه مثال ساده برات بزنم که رفتیم یه اثر تاریخی را یک جای دیدیم برداشتیم آوردیم توی خونه خودمون گذاشتیم با یه جابجایی خونه خیلی ساده به عنوان ساده‌ترین واجبهمون زباله اینو می‌ریزیم بیرون خیلی این اتفاق رایج هست. شاید در بین دوستان باشن کسانی که ببینن بشناسن زمینشناس هایی رو که حالا یا در دوران دانشجویی وقتی که ازدواج می‌کنن دیگه فرصت براشون نیست و اینها به عنوان یک زباله بیرون ریخته میشه و یا از یه خونه بغیت به یه خونه کوچیک که نقل مکان میکنن یه همچین بلایی سر در واقع میراث کشورمون میاد ببینیم چطور میشه خیلی جالبه که میبینیم به عنوان مثال که البته خبرهای جدیدی از این مکان من شنیدم که خب ظاهرم بهتر شده اینکه در یک یا یک جایی از کشور ما یک مکانی که به عنوان یک موزه وجود داشت و آثار فسیل‌های های با ارزشی از ایران توی اون نگهداری میشد به خاطر هیچ شرایط مساعد و بسترسازی برای اینکه اینها در معرض دید عموم قرار بگیره و از کنار این دیدن کسب درآمد حتی بشه به قول معروف شبیه ثبت های میوه در یه جای دپو میشه و در انبار شخصی یک حالا فرد علاقمند که اینها رو یک جورای جمع آوری کرده و یا از اون جالبتر در اخ... همین نمایشگاه اخیری که شاید کمتر از دو سه هفته ازش نمیگذره مربوط به گردشگری بود ما می‌بینیم تورهایی که در واقع تبلیغشون برای جستجوی فسیل هست با چه هدفی با صرفاً با این هدف که ما بریم و جم... فسیل رو جمع کنیم و بیاریم یا خیلی مواقع بشکنیم خب تا اینجای بحث خیلی شاید بی‌مهاو من به موضوع وارد شدن ولی می‌خوام ببینیم که از همین قضیه به سلاح گردشگری و در جستجوی فسیل سفر کردن در جاهای دیگه دنیا چطور استفاده میشه شما اگر کشورهای اروپایی تشریف ببرید به با عنوان نمونه آلمان که خب یه چند ژئوپارک مهم رو داره به افراد برای ورود به یک منطقه بلیت تهیه کنند حالا بر حسب یا شرایطی که وجود داره این مبالغ میتونه متفاوت باشه. 20 یورو 50 یورو 10 یورو و چکوش بهشون داده میشه و اینها میرن وارد یک منطقه میشن و اکتشافشون رو انجام میدن چندتا مسئله وجود داره یکی اینکه اون منطقه که اینها دارن روش اکتشاف میخوان انجام بدن در قالب یک علاقه علاقمند نه الزامن یک زمین شناس به اون کسی که دوست داره لذت پیدا کردن فسیل و تجربه بکنه اینها وارد یه منطقی میشن که از قبل شناخته شده است نمونه‌های با ارزش اون منطقه در واقع شناخته شده. در واقع به صورت شانس اینها میرن می‌گردن چون واقعاً پیدا کردن فسیل شانس است. اینها می‌گردن یه نمونه پیدا می‌کنن. این نمونه می‌تونه نمونه فسیلی یک نرمتن باشه مثل یک دوکافه‌ای مثل یه حلزون یا یک نمونه از یک مهره‌دار به اسم اون یک ماهی. وقتی که پیدا میشه از اینجا به بعد کار اون مجموعه شروع میشه نمونه رو که از فرد میگیرن در قالب یک پکیج زیبا فریم بندی شده با تعیین نام و سن اون فسیل به اون فرد در تحویل داده میشه در واقع, واقع هزینه اشو یک بار داده بوده اتفاق مهم یعنی این هستش که فسیل رو بدون نام و نشون رهاش نمیکنن فسیل هایی که خیلی مواقع به این شکل ما میبینیم که در دست به صورت کاملاً غیرکارشناسی جمعاوری میشه بدون نامو نشونه، بدون تعین سنه و اینها لابلا به کررات برای بنده به عنوان یک کسی که با این مسئله خیلی در ارتباط هستم نمونه‌های رو دیدم به عنوان مثال آرواره یک کوسه، دندون‌های یک کوسه، یک فوسیل مهردار، حتی میگو، خرچنگ چیزهایی که اغلب کسانی پیدا کردن که شاید چند نمونه دیگر رو آسیب زدن تا تونستن یک نمونه رو در بیارن حالا ببینید در جای دیگه دنیا چطور از این در واقع بهره برداری میشه خب اینجا یک موزه نیست این همون هایی هستش که با ما نمونه ارسکان در اروپا شما امکان دیدنش رو دارید اینجا یک موزه نیست یک انبار نگهداری در واقع فوسیل ها هست شما این فرصت رو در واقع نیست که بخواید بیاد لابلای اینها به من موزه نگاه کنید. چون اگه شرایط موزه ای باشه هیچ وقت با این تراکم نیست اما این نقطه اینجا خیلی قشنگ خودشون نشون میده که می بینیم ثروت هایی که اینجا وجود داره سرمایه هایی که اینجا دستبندی شده نامگذاری شده شده اگر قابل تشخیص باشه این دندون یک در واقع کوسه هستش یا این یک در واقع نرمتن هست شما چیزهایی رو میتونید اینجا ببینید که بسیار با ارزشه و در آخر، اون که شاید جذابتر باشه که اگر بخوام امروزی به خیلی از این مسائل به پردازیم میشه دوباره این تصویر رو با هم ببینیم، تصویر آخر میشه. اه. بله. اه. این یک فروشگاهی هستش که فروش در واقع نمونه های فسیلی رو انجام میده. در خیلی از کشورهای دنیا شما میتونید در واقع فروشگاه رو ببینید که در این مکان سنگ نمونه کانی و در کنار اونها فسیل ها فروخته نمیشه. خیلی از این فسیل ها که شما دارید نمونهش رو میبینید 600 دلار، 800 دلار، 700 دلار قیمت اینها هستش. یعنی قیمت کمی نیست. یعنی یک نمونه فسیلی که بنزه یه دونه بشقاب یا نلبکی اندازش هست، بسته به قیمت و میزان فراوانی یا کم بودن اون خیلی با ارزش میشه. خیلی از اینها ممکنه که قیمتی داشته باشه که در تصور ما نیاد ولی خیلی نوجوان مردانه بعضی اینها رو ما با چکش‌های زمین‌شناسی میشکنیم یا اگر هم پیداشون کرده باشیم و به خونه آورده باشیم تا یک جابجایی ساده اینها رو در واقع می‌ریزیم دور در واقع می‌خوام رو جمع بکنم با یک در عبارت کوتاه و اونم اینی که جواد کریمی فرمودن بندم تکمیلش می‌خوام بکنم میلیاردها سال زمان صرف شد تا ما به امروز برسیم زمین خودش به تنهایی بیش از چهار میلیارد سال حالا خورده شد نمی‌خوام اونجا بگم چهار میلیارد سال، چهارو خورده میلیارد سال زمان صرف کرده تا به امروز رسیده شاید خیلی بیانصافی باشه که ما جوری با این در واقع پدیده و با این موجود رفتار بکنیم که برای پنجاه سال بعدمون چیزی دیگه باقی نمونده باشه خواستم همه ما تو این جمعی که هستیم باید اثری باشیم برای اینکه بعد از این همونطوری که به میراث تاریخی مون توجه میکنیم و خیلی برای اونها اهمیت قائل هستیم، به این میراث طبیعی هم به همون شک بهش نگاه بکنه. متشکرم